درس دهم ده خاندن تابوت تمثیلی ساختن تابوت های تمثیلی شهیدان و آیین حمل آنها توسط عزاداران در فرهنگ ایران تاریخی بسیار طولانی دارد نمونه برجسته آن آیین سوگواری مرگ سیاوش و حمل تابوت تمثیلی اوست بنا بر روایت های تاریخی مردم ماور نر تا نخستین صداهای اسلامی هر ساله مراسم سالگرد کشته شدن سیاوش، قهرمان استوری ایران که خون پاکش به ناحق بر زمین ریخت، شبیه او را میساختند و در تابوتی میگذاشتند و بر سرزنان و سین کوبان و نوه خانان شهر میگرداندند. در, می در جوامع سنتی، مردم تاریخ را با افسانه پیوند میزنند و به دین ترتیب رویدادهای تاریخی به داستانهای استوریی تبدیل میشوند. امروزه شیعیان ایران در مراسم عزاداری شهیدان با سخنرانی ها، نمایش و حمل تابوت تمثیلی شهیدان خاطرات آنها را احیا می کنند. از میان متون کلاسیک نصر فارسی تاریخ بیحقی تاریخ بیهقی، ارزشمند کتاب تاریخ به زبان فارسی است. اهمیت این کتاب از نظر نصر فارسی همسان شاهنامه فردوسی در نظم است. تاریخ بیحقی شامل اخبار و اطلاعاتی مربوط به دوران سلطنت مسعود است و در واقع تاریخ مسعودی نام داشته که به نام نویسنده آن خاج عبولفضل بیحقی به تاریخ بیحقی مشهور شده است چنین گوید ابوالفضل بیحقی که چون این محتشم بیاسود در حدیث وزارت به پیغام سخن رفت. البته تندر نداد او سهل زوزنی بود در آن میانه و کار و بار همه او داشت و مصادرات و موازعات مردم و خریدن و فروختن همه او کرد و خلبتهای امیر باوی بیشتر می بود. در میان این دو تن را خیاره کرده بودند و هر دو با یکدیگر بد بودند پدریان و محمودیان بران بسنده کرده بودند که روزی به سلامت بر ایشان بگذرد و من هرگز بو نصر استادم را دل و متحیرتر ندیدم از این روزگار که دیدم بیشتر بدانیم ضرب المثل ضرب گفتاری است کوتاه و شایع و معمولا در قالب بیانی کلیشه‌ای و بیان کننده حالتی نمادین با معنی عمیق و اندرزگونه چند ضرب المثل فارسی جایی که نمک خوری نمکدان نشکن معنی محبت‌های دیگران را با نامهربانی زایع نکن چاقو دسته خودش را نمیبرد. معنی هیچ آدم عاقلی به خودش زیان نمی‌زند خدا همه چیز را به یک بنده نمیدهد معنی زیاده طلبی و به اندازه خود قانع نبودن پسندیده نیست دنیا را هر طور بگیری می‌گذرد معنی عاقل کسی است که به خود سخت نگیرد چه بد و چه خوب همه می‌گذرد سفرهش همیشه پهن است معنی شخص مهمان نواز و سخاوتمندی است سرش بوی قرمه سبزی می‌دهد معنی بیش از حد معمول داناست دارای افکار خطرناکی است. تاب زیر گلیم زدن معنی پنهان داشتن موضوعی که همه می‌دانند. کار را به کاردان باید سپرد معنی وقت و کار خود را با مراجعه به آدم اتازه کار تلف نکن. مادر زن دوستت دارد. معنی خطاب به مردی است که در حال گسترده بودن سفره غذا به خانهی وارد شود. مشمردگی در آوردن معنی خود را رنجورتر و بیمارتر نشان دادند درد خود را بزرگ جلوه دادند ایران را بهتر بشناسیم زائر چند نفر زائر جلوه یک امامزاده کوچک واقع در یکی از راسته های بازار قدیمی کاشان زیارت امامزاده ها و عزاداری مخصوصا در روز آشورا، دو عنصر محوری تشیع در ایران است در روز آشورا شیعیان شهادت امام حسین فرزند امام علی و حضرت فاطمه دختر پیغمبر را به یاد می‌آورند. به علاوه در بعضی نواحی تهران و شهرهای دیگر ایران یک نوع تئاتر سنتی مذهبی به نام تعذیه اجرا می‌شود.